بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارخ کتابیست که بر تو فرو فرستاده شده است و سینه تو از این ناهیه نباید تنگ شود تا با آن خطاکاران را بیم دیدی و برای مؤمنان پندیست ای مردم، آنچه را که با شما از جانب پروردگار شما نازل شده است، پیروی کنید و غیر از او دیگری را به حیث دوست و احامی پیروی نکنید، چقدر کم پنپسیر هستید و ای بسا باشندگان شهرهایی را در برابر گناهانشان تباه کردید پس ناگهان عذاب ما ایشان را در شبانگاه فرا گرفت یا در هنگامی که ایشان و خواب نیمروز بودند و چون عذاب ما به ایشان رسید دعوه جز این نبود که بگویند ما واقعا ستمگار بودیم و البته کسانی را که به سوی ایشان پیام فرستاده شده و نیز پیامبران را مورد سوال قرار می دهیم و حقا که به ایشان سرگزشتشان را به علم خود که هاوی همه رویدادهاست هاست بازگو می آره و ما لحظه غایب نبودی. در آن روز وزن کردن اعمال حق است پس از کسانی که وزن اعمال نیکویشان گران باشد هم ایشانند رستگاه اما برعکس کسانی که وزن اعمال نیکویشان سبک باشد هم آنهایان که خیشتن را زیان من ساختن به سبب ستمی که به آیات ما انجام دادند حقا که ما و شما را بر زمین استقرار دادیم و در آن برای شما اسباب معاشت را فراهم ساختیم اما از شکرانی که شما در برابر آن می کنید بیگمان شما را فریدیم سپس شما را شکل دادیم سپس با فرشتگان گفتیم که به آدم سجده کنید یعنی به او تعظیم کنید پس ایشان سجده کردند. مگر ایبلیس او از جمله سجده کنیدگان نبود خداوند گفت آیا چی چیز تو را سجده کردن باز داشت در حالی که من تو را به این کار امر کردم گفت من از او بهترم مرا از آتش آفریدی و او رازگیه خداوند گفت تو از آن منزلت و مقام فعود برای تو این حق نیست که در آن مقام و مرتبت سرکشی کنی. پس بیرون شو و واقعا تو از افراد ذلیل هست شیطان گفت مرا تا روزی که ایشان بر انگیختمی شوند مهلت بدی؟ خداون گفت تو از جمله محلت داده شده جان. شیطان گفت چون مرا گمراه ساختی بیگمان برای گمراه ساختن آدمیان بر سر راه راستی تو میشیدم سپس یکینا با ایشان از پیش و رویشان پشت سرشان جانب راستشان و جانب چپشان برای گمراه ساختنشان می آیم و تو اکثر را سپاسگزار نمی خداوند فرمود از آن مقام بیرون های نیکوهی دوراند شده گیرومان از ایشان کسانی که پیروی را می از همگی شما جهنم را مالامان می سازند ای آدم تو همسرت در بهش بسر دارید و از هر جا که خاستید بخورید و به این طرف هرگز نزدیک نشوید که از زمره ستمگاران می شود سفست شیطان به ایشان وسوسه کرد تا جای از شرمگاهشان دا که پوشیده بود برای ایشان آشکار سازد و گفت شما را پروردگار شما از این درخت منع نکرده مگر برای اینکه مبادا ما فرشته شوید یا زنده جاوید گردید و به ایشان سوگند خورد که واقعا من با شما خیل خواهد. سپس ایشان دا فریب داد و چون از درخت چشیدن شرمگاهشان بر ایشان ظاهر شد و ایشان ناچار و چسباندن برک های درختان بهشت بر بدن خود آغاز کردند و در این حال پروردگارشان بر ایشان ندا کرد آیا من شما را از آن درخت منن نکرده بودم و برای شما نگفته بودم که واقعا شیطان به شما دشمن استاشکارا گفتند پروردگار ما ما بر خیشتن ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزی و بر ما رحمت خیش را ارزانی نفرمایی ما یکینا از زمره زیانکاران می باشید خداون گفت فرو دایید در حالی که بعض شما دشمن بعضی دیگر می باشید و در زمین برای شما تا موعد معین محل استقرار و برخورداری از وسایل زندگی می باشد و گفت در آنجا زندگی می کنید و در آنجا می میرید و از آنجا بیرون آورده می شد ای فرزندانی آدم ما برای شما لباسی دادیم که شرمگاه شما را بپوشاند و هم برای شما زینتی باشد اما لباس تقوا از همه بهتر است این از نشانه های خداوند است تا باشد که ایشان پند پذیر شوند ای فرزندانی آدم شیطان شما را فریب ندهد چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون آورد جامعه های ایشان تنشان کشید تا به ایشان شرنگاهشان راشکار سازد واقعا او و قبیله از شما را از جای بیند که شما آنها را دیدن نمیتوانید ما شیطان ها را به آنهای گردانیدیم که ایمان ندارد و چون عمل شهرمناک انجام دهند میگوین پدران خود را به این عمل یافته و خداوند ما را به این امر کرده است. بگون خیر خداوند هرگز به عمل شهرمناک امر نمی کند. آیا شما در شان خداوند چیزی را میگویید که نمی دانید؟ بگو پروردیگار من به عادل امر فرمده است و به اینکه که خود را در هر مسجد یعنی نماز به سوی او کنید و او را با اخلاص و فرمان برداری بخوایید چنانچه شما را در اول آفرهید و به سوی او باز می گردید. گروه را هدایت کرده و گروهی از ایشان به اساس اعمال خودشان گمراهی بر ایشان مسلم گردید، ایشان از شیاطین را به جز خدا حامی و دوست گرفتند و باز هم فکر میکنند که ایشان رهیاب هستند ای فرزندان آدم پوشاک زینت بخش خود را در هنگام هر نماز بتن کنید بخورید بنوشید و اصراف نکنی حقا که او مصرفان را دوست ندارد بگو زینت الهی و چیزهای پاکیزه ای را از روزی که خداوند برای بندگان خود پیدا کرده چی کسی حرام گردانیده است بگو اینها در زندگی این دنیا برای است که ایمان دارند و در روز آخرت خاص از آن ایشان است به این ترتیب ما آیات را به مردمی و تفصیل بیان می کنیم که می دانند. بگو پروردگار من واقعا اعمال شهرناک را خواه آشکار باشد یا پنهان گناه و سرکشی ناحق را و این که به خداوند شهی کارید. چیزی را که خداوند و آن هیچ دلیل نفرستاده حرام گردانیده است و نیز این را که در خداوند خداوان چیزهایی بگوید که شما در آن دانشی ندارید برای هر امت است، چون میادشان به سر رسید نه آن را تاخیر کرده میتوانند و نه هم تقدیم ای فرزندان آدم چون به شما پیانبرانی از میان شما بیایند که نشانه های مرا برای شما بیان کنند پس هر که از خدا بترسد و نیکویی ورزد برایشان نه ترسیست و نه هم ایشان اندرگیم میشوند و کسانی که آیات ما را تکذیب نمایند و از قبول آنها سرکشی کنند اهل آتشند و در آنجا برای همیشه و سر میبرند. پس کی تمگارتر از کسی که دروغی را بر خداون بربندد یا آیات او را تکذیب کند برای چنین مردم قسمت تعیین شده ایشان از کتاب عنی لوح محفوظ میرسد تا وقتی که فرستادگان ما که معذف به گرفتن روحن برسند و روحشان را قبض کنند میگوین کجا هستند آن شریکایی که جز خدا به آنها نیایش میکردی؟ در جواب میگوین آنها از پیش ما گم شدند یعنی را در خلا گذاشتند و بر خود گواهی می دهند که واکن ایشان کافر بودند خداوند به آنها ها در ظمرۀ گروههای جن و انس که پیش شما اند در آتش داخل شوید هر گروهی که به دوزخ داخل می شود به گروه همانند خود که پیش از ایشان وارد شده بود لعنت می فرسته. و چون همه با یکدیگر پیوسته شوند دسته آخرشان در مورد دسته اولشان می گوید ای پروردگار ما امین هاین که ما را گمراه کردند، پس ایشان را عذاب دوچند از آتش نصیب گردان خداوند می گوید برای هر یکی از شما عذاب دوچند است اما شما نمی دانید. و باز دسته اولشان به دسته دومیشان میگوید ببینید شما بر ما هیچ امتیازی ندارید پس برابر آنچه متکب شده اید مجازات را بچشید بگمان آنهایی که آیات ما را تکذیب کرده و از آن سرکشی نموده اند دروازه های آسمان به رویشان باز نمی شوند و در بهش داخل نمیشوند تا هنگامی که شطور به لوفی سوزن داخل گردد و ما گنهکاران را چنین جزا برای ایشان از دوزخ فرشیست یعنی دوزخ بر ایشان همچون است. و با بالا ایشان پوشش طبقه های است از آتش و ما ستنگاران را چنین جزا میدیم کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند ما بر هیچ کسی باری را نمی گذاریم مگر به اندازه توانی او ایشان اهل بهشتند و در آنجا جادانه و سر میبرند و از دل کی کینه و بدبینی را دور می کنیم از زیر درختان فاصلهای ایشان ذویبار ها جریان دارد ایشان گویند ستایش خدای را که ما را به این سعادت راه نموده است و ما هرگز توان رهیابی نداشتیم اگر خداوند ما را هدایت کرد وواقعا پانبران پروردگار ما به حق آمدن و ایشان چنین ندا میشود این است بهشتی که شما در اثر اعمال نیک خویش وارث آن بهشتیان به دوزخیان ندا می کنند ما واقعا دریافتیم که آنچه فرودگار ما به ما وعده کرده بود حق است آیا شما نیز در که آنچه فرودگار شما به شما وعده کرده بود حق است آنها می گویند بلی در این حال آواز کننده در بینشان چنین آواز می دهند لعنت خداوند بر ستم گاران باد هایی که مردم را از راه خدا باز می داشتند و می آن را کجل و دهند و ایشان از آخرت انکار کار داشتند درمیان ایشان یعنی بهشتیان و دوزفیان است و بر اعراف مردانی که هر کس را به علامات او می آنها به بهشتیان ندا می کنند سلام بر شما ایشان هنوز به بهشت داخل نشده اند ولی امید داخل شدن به آن را دارند انگامی که چشمان ایشان به سوی دوزخیان بیفتد می گوین کلدگار ما، ما را با گروهی ستمگاران پیوست مگردن و از حال عراف با مردمی که آنها را سیمایشان می شناسند ندا کرده می شما را جمع دنیای شما و چیزی که به سبب آن سرکشی می کردید به کار نیامد آیا اینها همان مردمی نیستند که شما در باره ایشان می که خداوند آنها را از رحمت خود به روار نمی سازد؟ او به ایشان گفته می شود به بهش داخل شوید. بر شما ترسی نیست و نه هم اندرگیم می دوزخیان و بهشتیان ندا می کنند برای ما آب یا از چیزهایی که خداوند برای شما روزی داده است ارزانی کنید ایشان میگویند، هر حقا که خداوند همه این چیزها را برکاتران حرام گردانیده است هایی که دینشان را به و لایب گرفتند و زندگی دنیا فریبشان داده، پس امروز ما ایشان را فراموش کنیم طوری که ایشان در زندگی دنیا ملاقات این روز را فراموش کردند و از آیات ما انکار میوسیدند ما بدون شک و ایشان کتابی را آوردیم که آن را به اساس دانش تفصیل دادیم برای هدایت و مرحمت گروه مؤمنان ایشان متحق چیزانی و ایتهای قران را ان گذار میکشند روزی که وایدهای قرانی محقق شود بیان با عذابی را دیگر گرفتار شوند کسانی که آن را پیش فراموش کردند میگوین ای گمان پیغمبرانی ما به حق آمدند و حالا ما شفاعتگرانی نداریم که برای ما شفاعت کنند یا بازگردد اندشوین تا واقع غیر از راوی تبلیغ خود را پیش گیریم. در حقیقت ایشان خود را تباه کرده اند و چیزهایی را که به حیص معبود به دروغ گرفته بودند از ایشان گم میشاده. حقا که پروردگار شما است که آسمانها و زمین را در شش روز آفری سپس بر عرش مستولی شد شب را همچین پردهی بر روز بیکشد شب روز را به سرعت میجوید و آفتاب ماه و ستارگان را که تحت فرمان اویند آفری هان آفری نشو و فرمان روایی خاص از آن اوز با برکت است خداوند پروردگاری جهانیم با تذرو و پنهان و پروهدگاری خیش نیایش کنید او بیگمان تجاوز کاران را دوست ندارد و زمین بعد از اصلاح آن مرتکب فساد نشوید و او را با ترس و امیدواری نیایش کنید بدون شک رحمت خداوند و نیکوکاران نزدیک است و هم اوست که بادها را همچون مجد آورانی پیش باران رحمت خیش می فرستد تا چون ابر گران را بردارد آن را به سوی سرزمین های مرده یعنی خشک می رانید پس با وسیله آن آب را افترو می ریزید و بدین وسیله از هر میوه بیرون میارید این چنین مردگان را زنده می تا باشه که شما پند بگیرید زمین پاک یعنی صالح و زراعه رستنی آن به ازن پروردگار می روید و آن که ناپاک یعنی زهر باشد از آن جز گیاه ناچیز و بی احزش نمی روید به ترتیب ما آیات را به گروهی که سفاس گذارند بیان می کنید. بیگمان نوح را و سوی مردم او فرستادیم پس گفت ای مردم من خدا را بپرستید شما را جز او معبودی نیست واکن من بر شما از عذاب روز بزرگی میتسم کلان سرندگان قوم او گفتند ما تو را بیگمان در گمراهی واضح میبینیم او گفت ای مردم من گمراهی به من وجود ندارد و برعکس من ام از جانب پروردگار جهانیان به شما پیام های پروردگار خدا می رسانند، شما را نصیحت می و از جانب خدا چیزی را می که شما نمی دانید؟ آیا از این در شگفت شدید که برای شما پیامی از جانب پروردگار شما توسوط انسانی میان خود شما آمده است تا شما را هزار سازد و تا بترسید و تا باشد که مورد رحمت قرار گیرید؟ اما ایشان او را تکذیب کردن پس ما او و کسانی را که در کشتی با او بودن نجات دادیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند در غرق ساختیم ایشان واقعا مردم نابینا بودند و به قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم او گفت ای مردم من خداوند را پرستش کنید جز او برای شما معبودی نیست آیا از خدا نمی ترسید کلامشوندگان کافران از قوم او گفتند ما تورا در بیخردی میبینیم و ما تورا از از درو دروگویان میپنداریم او گفت ای مردم من من بیخرد نیستم بلکه پیامبری از جانب پروردگار جهانیانم برای شما پیام های پروردگارم را میرسانم و من به شما نصیحتگری قابل اعتماد هستم آیا از این درسی گفت که برای شما پیامی از جانب پروردگار شما توسط انسان از قوم خود شما آمده است تا شما را بترساند؟ با یاد دارید هنگامی را که شما را بعد از قوم نوح جانشین گردانید و برای شما در آفرینیش فیزونی را یعنی در میان مردم شما را قد بلند عنایت فرمود پس نعمتهای خدا را به دارید تا باشد که رستگار شوید گفتند آیا تو نزد ما آمده ای تا ما خدا را به یگانگی بپرستیم و آنچرا پدران ما می ترک کنیم پس بر ما همان عذابی را بیاور که ما را به آن تهدید می اگر راست می گفت حقا که با شما جانب پروردگار شما عذاب و غذاب واقع شد آیا با من در باره نامهای معبودان نامنهاد مجادل می کنید که شما و پدران شما نامگذاری کرده اید در حالی که خداوند برای این کار شما دلیل نتر است پس انتظار بکشید من نیز با شما از منتظران. هم. پس او و کسانی را که باور بودند بر رحمت خیش نجات یافتند و کسانی را که ما را تاکید کرده و ایمان نیاورده بودند ریشکن ساختید و واسو قوم سمود برادرشان صالح را فرستادی. او گفت ای مردم من خداوند را پرستش کنید جز او برای شما معبودی نیست حقا که برای شما دلیل آشکار از جانب پروردگار شما آمده است این قر یعنی ماده خداوند برای شما نشانه است پس آن را بگذاری تا در زمین خدا بچرد و به آن آسیبی نرسانید و عذاب عذاب دردناک شما را میگیرد و بیاد دارید هنگامی را که شما را بعد از عاد جانشین گردانید و شما را در زمین جای داد که برای خود از سرزمینهای هموار آن قصرها بسازید و در کوهها خانه بتراشید پس نعمتهای خدا را یاد دارید و روی زمین و بدی و تبهکاری دست نیازید آن کلان شویندگان از قوم او که سرکشی کرده بودند و محلومان برای کسانی از ایشان که ایمان آورده بودن گفتند آیا شما می دانید که واکن صالح از جانب پروردگار خیش پیان برست؟ آنها گفتند ما واکن به آنچه با او فرستاده شده ایمان داریم سرکشان گفتند واکن ما منکر آن چیزی هستیم که شما به آن اعتقاد دارید. سپس ایشان آن مادشتر را پی کردند و از امر پروردگار خیش گشت خانه سفید چی کرده گفتند ای سالی اگر تو واکن پیامبری، آنچه را که با آن مراوی میدهی بیاورد پس ناگهان زلزله ایشان را گرفت و ایشان در سفید دم در داخل خانه های خیش از پای در آمد. در این حال از ایشان روی برگرداند و گفت ای قوم من بیگمان پیام پروردگاه خود را به شما رساندم و شما را نصیحت کردم اما شما نصیحت را دوست ندارد و لوت چون با قوم خود گفت آیا چون فهشای را مرتکب می شوید که پیش از شما هیچ یک از مردم عالمیان آن را متکب نشد است؟ شما به مردان به شهوت پیش می شوید زنان شما واقعا قوم مصرفی هستید جواب قوم او جز این نبود که بگویند ایشان یعنی لوت و پیروان او را از شهر خود بیرون کنی اینها مردمی اند که می پاکیزه باشند ما او و خانواده اش را نجات دادیم جز همسر را که در جمعه کسانی بود که باقی ماندند و بر ایشان باران از سنگ ریزه ریختیم پس ببین که آخر کار مجرمان چی بود است؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا سوی قوم مدین برادرشان شعب را فرستازید گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید وجود او برای شما معبودی نیست او کنون برای شما نشانه واضحی از پروردگار شما آمد پس پیمانه و وزن را عادلانه ایفا کنید و به مردم چیزهای شان را کم بدهید و در روی زمین بعد از اصلاح آن فساد را متکب نشوید این کار برای شما بهتر است اگر ایمان دارید و به سر هر راهی منیشینید که مردم را بترسانید و آنهایی را که به خدا ایمان اند از راه او باز دارید و آن راه را کج جروه و بیادارید دارید وقتی را که شما اندک بودید و خداوند شما را بسیار گردانید و ببینید که آخر کار مردم مفسد بود شد و اگر از شما دسته هستند که به آنچه من به آن فرستاده شده ام ایمان دارند و دسته هم هستند که با آن ایمان ندارند پس حبر کنید تا خدا در میان ما حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است کلامشوندگان از قوم او که سرکشی کرده بودند گفتند ای شعاید بیگمان تو کسانی مؤمن را که با تو هستند از شهر خود بیرون میرانیم یا اینکه شما به آین ما بازگردید شعیب گفت اگر چی ما نوازی باشیم ما را به این کار وادار میسازید اگر به ملت شما برگردیم بعد از آنکه خدا ما را از آن وارهانی حقا که ما به خداوند دروغ بر و برای ما شایسته نیست که به با آن بازگردیم مگر آنکه خدای پروردگار ما خواسته باشد پروردگار ما از روی علم و همه چیز احاطه کرده است بر خدا توکل کردیم ای پروردگار ما میان ما و قوم ما به حق فیصله کن و تو بهتحین فیصله کنندگانی و کلان شبندگان از قوم او که کافر شده بودند گفتن اگر شما شعیب را پیروی کنید بیگمان زیان کار بیشد پس زلزله ایشان را گرفت و ایشان در سکی در داخل خانه های خیش از پای تر آمدند. مردمی که شعیب را تکذیب می کردند توری نابود شدند که گوی هرگز در آن خانه ها سکونت اند. آنهایی که شعیب را تکذیب میکردند از زیانکاران بودند پس شعیب از ایشان روی برگردانید و گفت ای قوم من بگمان من پیامهای پروردگار خود را به شما رساندم و شما را نصیحت کردم پس چیگونه بر مردم کافر تأثیت خورم؟ و ما هیچ پیامبری را به شهری نفرستادیم مگر آنکه اهل آن شهر را به سختی و رنج گرفتار کردیم تا باشد که ایشان تضرع کند سپس ما و ایشان به جای ناراحتی آرامش دادیم تا آنکه نموع کردند یعنی بسیار شدند و گفتند پدران ما نیز بر رنج و راحت مواجه شدند سپس ایشان را ناگهان گرفتیم و خطری را که متوجه ایشان بود درک نمی کرد. اگر مردم این شهرها ایمان می آوردند و پرهیزگاری می کردند ما واکن بر آنها دروازه های برکات را از آسمان و زمین می گوشادید ولی چون حق را تکذیب کردند پس ایشان را در برابر اعمالی که متکب شدند گرفتار کردیم. آیا مردم این شهرها از این ایمن شدند که در شب هنگامی که ایشان خفته باشند عذاب ما به سر وقتشان برسد آیا مردم این شهرها از این ایمن شدن که در چاشتگاهان که ایشان بیباکانه با بازی مشبولن عذاب ما و سر شان برسد؟ آیا از گرفتار شدن خیش بر تدبیر خدا ایمنند در حالی که از گرفتار شدن خیش به تدبیر خدا جز مردم زیانکار که چنین می انگارند کسی ایمن بودن نمی تواند؟ آیا برای کسانی که زمین را بعد از صاحبان سابقه آن به میراس میگیرند این واضح نشده است که اگر ما بخواهیم ایشان را بر گناهانشان می میگیریم و بر بردلهایشان مهر میزنیم پس ایشان هرگز نمیشنوانید؟ این چنین بود حال این شهرها که ما برخی از رویدادهای آن را به تو بازگو میکنیم پیامبرانشان بیگمان به ایشان با نشانه های روشن آمدند اما آنها با آنچه قبلا آن را تکذیب کرده بودند ایمان نمی آوردند و این ترتیب خداوند بر دل های کافران مهر می نهاد در بیشتر این مردم پابندی به عهد نیافتیم و بیشتر ایشان را واکن فاسق یافتیم سپس موسی را بعد از ایشان با نشانه های خود با فرعون و کلان شوندگان قوم او فرستادی اما ایشان آن نشانه ها را ظالمانه رد کردند پس بنگر که آخر کار فساد پیشگان چگونه بود و موسی گفت ای فرعون بی من من ام از جانب پروردگار جهانیان سزاوار آنم که درباره خداوند جز حق چیزی نگویم برای شما از جانب پروردگار شما نشانه و را آوردن پس بنی اسرائیل را با من بفرست فرام گفت اگر تو واقعا با نشانه آمده پس آن را بیاور اگر تو از زمره راست آنگاه انگاه موسا عصای خود را انداخت و در دم اجده های آشکارا گردید و دست خود را از آستین براورد و در دم برای بینندگان سفید گروه بود قران شبیندگان قوم فرعون گفتند این شخص واقعا ساهر ماهری است می خواهد شما را از زمین شما بیرون کند پس شما چی مشوره می دهید؟ گفتند کار او و برادرش را به تحویق انداز و اگر را به ها بفرست تا برای تو همه جادوگران ماهر را بیاورند. جادوگران نزد فرعون آمدند و گفتند آیا برای ما مزد مناسب هست اگر ما غالب شویم فران گفت بلی و بر آن شما از مقربانید گفتند ای موسا آیا در اول بار تو می افگهی یا ما می افگهی موسا گفت شما می پس چون ایشان بساط جادوگری خود را انداختند که های مردم را جادو کردند و ایشان را ترساندند و جادوی بزرگ آوردند و به موسا وحیه کردیم که اکنون عصای خود را بینداز و در دم همه افریقاری هایشان را در کام خود می برد و این ترتیب حق آشکار شد و هر آنچه ایشان سربراه کرده بودن همه باطل گردید پس فرانیان در آن هنگام مغلوب گردیدند و ذلیل و کوچک شدند و جادوگران به سجده افتادند گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم به طرفی گاریم موسی و هارون فران گفت آیا پیش از اینکه من با شما اجازه بدهم با او ایمان آوردید؟ یقینا این رنگی است که شما آن را در این شهر طرح کرده اید تا مردم آن را از آن بیرون رانی از نتیجه کار خیش را درخواهید یافت بیگمان من دست ها و پاهای شما را از جانب مخالف یعنی دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست را می و سپس همه شما را بدار می آنها گفتند ما بیگمان به پروردگار خود باز می و تو از ما انتقام نمی مگر به این سبب که ما به نشانه های پروردگار خودشون به ما رسید ایمان آوردیم. ای پروردگار ما برماشه که بایی فروریز و ما را مسلمان بمیران کلانشمندگانی از قوم فرعون گفتند آیا تو موسا و قوم او را میگذاری تا در روی زمین فساد پیشگی کنند و تو معبودان تو را ترک گویند گفت به پسران ایشان را بکشیم و زنان ایشان را زنده نگه میداریم و واقعا ما بر ایشان غالبیم موسی و قوم خود گفت، از خداوند یاری بجوی و شکیبا باشی، بیگمان زمین از آن خداست، هر که راز بندگان خود که خواهد وارث آن می سازد و آخر کار از آن پرهیزگاران است گفتند، ازید شدیم، پیش از آن که ما بیایی و نیز بعد از آنکه که با سوی ما آمدی، گفت شاید پروردگار شما دشمن شما را نابود کند و شما را در زمین جانشین سازد تا آشکار گرداند که شما چگونه رفتار می کنید ما به گمان قوم فرعون را به خوشسالی ها و کمبود میوه مجازات کردیم تا باشد که ایشان پند گیرد. و چون به ایشان خوبی یعنی رفایتی میرسید، میگفتند این از خوبی ماست و چون به ایشان بدی، یعنی سختی می رسید، با به موسا و همراهانش بدفالی می زدند هان بیگمان بدفالی ایشان که از عمال خودشان ستچشما گرفته است نزدیک خداوند است اما بیشتر ایشان نمی دانند. و گفتند هر آنچه از نشانه ها را که تو به ما بیاوری تا ما را به آن جادو کنی هرگز به تو ایمان نمی آوری. پس بر ایشان طوفان ملخ شبش پهاو و خون را به حیث نشانه های مفصلی فرستادیم ولی آنها سرکشی کردند و مردمی بودند گناهکار و چون بر ایشان عذاب نازل شد گفتند ای موسی به پروردگار خود به اساس وعدۀای که به تو کرده است برای ما دعا کن اگر تو از ما عذاب را دفع کنی ما بهراستی به تو ایمان می آوریم و با تو بنی اسرائیل را می فرستیم. اما چون از ایشان عذاب را بعد از مدت معینی که آن را به سر می‌رسانیدند، دفع کردیم، ناگهان خود عهد خیش را میشکستند. لذا از ایشان انتقام گرفتیم و ایشان را به دریا غرق کردیم. از سبب آنکه آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. و ما به مردمی که محروم بودن مناطق شرقی و غربی زمین را که در آن برکت نهادیم به میراث دادیم به وعده نیک پروردگار تو برای بنی اسرائیل وفا شد به سبب آنکه شکیبایی ورزیدند و آنچه فرعون و قوم او ساخته و آنچه بر افراشته بودند هم را ویران گردانیدیم و بنی اسرائیل را از دریا گذرانیدیم پس چون ایشان با مردمی برخوردن که مجاور بتان خیش بودند گفتند ای موسی برای ما نیز معبودی بساز مانند اینکه ایشان معبودانی دارند موسی گفت واکن شما مردمی هستید که جهالت می حقا که این مردم با همه چیزهایی که به آن سر و کار دارند نابود شده نیست و باطل است کار یعنی بتپرستی که ایشان انجام می‌دادند موسی با ادامه سخنان خود گفت آیا برای شما جز خدا معبودی دیگر بجویم در حالی که او شما را بر همه جهانیان فضیلت داده است و بهیاد دارید هنگامی را که شما را از قوم فرعون نجات دادیم که شما را پیوسته به بدترین طریقهها شکنجه می کردند پسران شما را قتل عام می کردند و زنان شما را زنده می گذاشتند و در آن از طرف پروردگار شما آزمایشی بزرگ بود برای موسا سی شب را معیاد گذاشتیم و آن را با ده روز دیگر تمام کردیم پس معیاد پروردگارش چهل شب کامل شد و موسا با برادرش هارون گفت در میان قوم من جانشین من شو و امور ایشان را اصلاح کن و راه فسادکاران را پیروی مکن وقتی که موسی با وعدهگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن زد موسی گفت ای پروردگارم خود را به من نشان دی تا به سوی تو نظر کنم خداوند گفت تو مرا نمی بینی ولیکن به سوی کوه نظر کن اگر با جای خود قرار گرفت پس مرا دید وقتی که پروردگار او بر کوه تجلی کرد آن را ریزه ریزه کرد و موسی بیهوش افتاد پس چون به هوش آمد گفت تو پاکی با تو تائب شدم و من نخستین مؤمنان هستم خداوند گفت ای موسی، بدون شک من تو را به رسالت خود و با سخن خود بر مردم برگزیدم. پس آنچه از وحی به تو دادن بگیر و از سپاس گذاران باش و برای او در لوحه ها از هر چیز پنده و تفصیل برای هر چیز نوشته گفتیم گفتیم اینها را با قوت بگیر و قوم خود را امر کن که بهترین آنها را بکار گیرند و بزودی من به شما سرای فاسقان را نشان می دهم بزودی را از توجه به آیات خود باز می دارم که در زمین بدون استحقاق تکبر می و اگر هر آیه را ببینند باز هم به با آن ایمان نمی آورند و اگر راه رستگاری را ببینند آن را به حیث راه خیش نمی گیرند اما اگر راه ناسباب را بیبینند آن را به حیث راه خیش میگیرند این سبابه است که آیات ما را تکذیب کرده اند و از آن غافل بودند آنهایی که آیات ما و لقای آخرت را تکذیب کردند اعمالشان حبیطه شده است برایشان جز مزد عمل کردشان جزا دادن نمی شود قوم موسا بعد از رفتن او به کوه تور از زیورات خود گوساله مجسم را ساختند. که آوازی همچون آوازی گاو داشت آیا ندیدند که آن گو ساله با ایشان حرف نمی زند و با ایشان راه را نشان نمی دهد آن را به خدایی گرفتند و ستمگار بودند و چون حقیقت به دستشان افتاد و دریافتند که گمراه شده اند گفتند اگر پروردگار ما بر ما رحم نکند و ما را نیامرزد، زد بیگمان از یانکارانیم چون موسی با خشم و اندوه با سوی قوم خیش بازگشت گفت بعد با از من بد جانشینی کردید آیا بر امر پروردگار خود شتاب ورزیدید بر رسیدن فرمان پروردگار خود صبر نکردید و لوحه را بر زمین گذاشت و برادرش را از موهای سرش گرفته با سوی خود کشانی هارون گفت ای پسر مادر من مردم واقعا مرا ضعیف یافتند و نزدیک بود مرا بکشند پس مرا دشمنشاد مکن و مرا با گروه ستمگاران در یک ردیف قرار مدید. موسا گفت ای پروردگار من، من و برادر مرا بیامرز و مرا مشمول مرحمت کردن و تو مهربانت این مهربانانی. بیگمان کسانی که گوثاله را به خدایی گرفتند، به زودی و ایشان خشمی از جانب پروردگارشان میرستد، و ایشان را است در زندگی این دنیا و به این ترتیب ما افتراکنندگان را جزا می دهیم اما کسانی که مرتکب اعمال بد می شوند و بعد از آن توبه می کنند و راستی ایمان می آورند بیگمان پروردگاری تو بعد از آن آمر زنده و مهربان است و چون خشم موسا فرونش است لوحه ها را گرفت و در نوشته های آن هدایت و رحمتی بود برای کسانی که از پروردگار خود می ترسند. آنگاه موسی هفتاد تن از قوم خود را برای وعدگاه ما انتخاب کرد پس چون ایشان را زلزله شدید گرفت موسا گفت ای پروردگار من اگر می‌خواستی هم ایشان را و هم ما را پیش از این حلاک کردی آیا تو ما را در برابر اعمال به خیردان قوم ما حلاک کنی؟ این نیست مگر آزمایش تو و وسیله هر کی را خواهی گمراه می سازی و هر کی را بخواهی هدایت می کنی تو کارساز ما هستی پس ما را بیا و بر ما مرحمت فرما و تو بهترین یا و برای ما آنچه را در دنیا و آنچه را در آخرت خوب است مقرر کن واقعا ما به سوی تو بازگشت نمودیم خداوند گفت مجازات خود را به هر که بخواهم میرسانم اما رحمت من همه چیز را فرا گرفته است پس آن را برای کسانی کسان می میکنم که پرهیزگاری میورزن و زکات میدهن و آنهایی که با آیات ما ایمان میارند. هایی که پیانور نبی اومی را پیروی می کنند که نام او را در نزد خود هم در تورات و هم در انجیل نوشته می آبند. ایشان را به معروف یعنی پسندیده امر می کند و ایشان را از منکر یعنی ناپسند باز می دارد و برای ایشان چیزهای پاک را حلال میگرداند و برای ایشان چیزهای پلید را حرام می سازد بارهای سنگینشان و توقی را که برگردنشان است بر پس آنانی که با او ایمان آوردند و او را تعظیم کردند و او را یاری دادند و نور را که با او فرستاده شده است پیروی نمودند هم ای شانند رستگاه بگو ای مردم من فرستازه خدایم و سوی همه شما از جانب ذاتی که پادشایدی آسمارها و زمین از آن اوست معبود جز او هیست. زنده میگرداند و میمیراند پس به خدا و او آن نبی او می ایمان آرید که به خداوند و گفته های او ایمان دارد و او را پیروی کنید تا باشد که رحیاب و از خواب موسا گروه هستند که به حق هدایت و به آن حکم بیکنند ما ایشان را به دوازده قبیله اومد تقسیم نمودیم به موسی هنگامی که قوم او از او آب خواستند وحیه کردیم که با عصای خود به سنگ بزن پس از آن دوازده چشمه جاری شد هر گروه جای آب خود را دریافت از عبر بر ایشان صاحبان ساختیم و بر ایشان من و سلوارا نازل کردیم و گفتیم از چیزهای پاکیزهی که با شما روزی داده ایم بخورید ایشان با ما ستم نکردند بلکه برخیشتن ستم میکردند و بیادار هنگامی را که به ایشان گفته شد به این شهر جاگوزین شوید و از آن هر طوری که می خواهید بخورید و بگوید خدایا گناهان ما را بیامرز و به دروازه شهر به فیروتنی دارایید گناهان شما را برای شما میامرزیم و به زودی بر پاداش نیکوکاران می افضاییم پس ستمگارانشان آن کلیمه و غیر آنچه با ایشان گفته شده بود تبدیل کردن پس بر ایشان به سبب ظلمی که می کردن را از آسمان فرستادی. از ایشان در مورد شهری که در کنار بحر قرار داشت سوال کن که اهالی آن در روز شنبه دست به تجاوز می زدن. چون در روز شنبه ایشان ماهیان آنها به صورت آشکارا به ایشان می ولی در روزی که شنبه نداشتند ماهی به ایشان نمی آمد. ما ایشان را چنین آزمودیم به سبب اینکه دست دستخوش فسق شده بودند و به هنگامی را که گروهی از ایشان گفتند چرا کسانی را پن می دهید که خداوند ایشان را هلاک کردنی یا به عذاب شدید عذاب کردنی است و ایزان گفتند تا ما را به حضور پروردگار شما حضوری باشد و تا باشد که ایشان بترسند پس چون اندرزهای را که به آن پن داده شدن فراموش کردند کسانی را که از اعمال ناشایسته بازشان میداشتن نجات دادیم و ستمگاران را به عذاب شدید گرفتار کردیم به آن که از خوش فسق شده بودند و چون از آنچه از آن باز داشته شده بودند سرکشی کردند برایشان گفتیم بوزینه زلیل باشید و و یهودا چون پروردگار تو اعلام کرد که بر ایشان تا روز قیامت کسانی را میگمارد که عذاب شدیدی را پیوسته بر آنها تحمیل کنند واقعا پروردگاری تو در اعذاب کردن صحیح و او در عین حال واقعا آمر زنده و مهربان است ایشان را به گروه های مختلف در روی زمین تقسیم کردیم بعضشان صالحن و بعضشان غیر از ایشان را به نیکی و بدی ها آزمودید تا باشه که با سوی ما بازگردند آنگاه بعد از ایشان نسل جانشینشان شد که کتاب را میراث گرفتند و برای خود متای به این دنیا را برگذیدند و می ما آمرزیده خواهیم شد ولی در عین حال اگر همانند همان متا به ایشان بیاید آن را می گیرند آیا از ایشان در کتاب عهد گرفتن نشد که به خدا جز به حق چیزی نگویند و مطالب را که در آن هست خانده ان و برای پرهیزگاران سرای آخرت بهتر است آیا نمی و کسانی که به کتاب چنگ می زنند و نماز را به تمام و کمال برپا می دارند ما هرگز مزد مسلحان را ضایعع نمی کنیم خاطر بیاور هنگامی را که ما کوه را بر بالایشان قرار دادیم گویا که آن بانی بود و پنداشتند که بر ایشان افتنده است و ایشان گفتیم آنچه را به شما دادیم به تمام نیرو بگیرید و آنچه را در آن است به یاد گیرید تا باشد که شما پرهیزگار شد. و بیادار هنگامی را که پروردگار تو از فرزندان آدم از پشتهایشان اولادشان را گرفت یعنی بیرون آورد و ایشان را بر خودشان گواه ساخت از ایشان پرسید آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن بله ما شهادت می دهیم که تو پروردگار مایی این برای آن است که ما در روز که آمد ما واقعا از این موضوع غافل بودیم یا بگوید بگمان پدران ما پیش از ما شرک آوردن و ما نصلای بعد از ایشان بیدیم پس آیا ما را به نسبت کسانی که برای باطل رفته می میکنیم؟ به این ترتیب ما آیات را به تفصیل بیان میکنیم تا باشد که ایشان به سور ما بازگردند و برایشان داستان کسی را بخوان که ما برای او آیات خود را دادیم ولی او از آنها بیرون آمد یعنی خود را از جلد پیروی احکام آن کشید پس شیطان در پی او شد و او از زمره گمراهان گردید اگر می خواستیم او را با وسیله آن آیات رفت می دادیم اما او به زمین پایان شد و از هوای نقص خیش پیروی کرد پس مثال او مثال سگ است که اگر بر او حمله کنی هم حلست می زند یعنی زبان خود را بیرون می آورد یا او را ترک کنی باز هم حلست می زند این است مثال کسانی که آیات ما را تکذیب کردن پس این داستانها را با مردم قصه کن تا باشد که فکر کند. اون بد مثال است مثال قومی که آیات ما را تکذیب کرده و برخیش ستم می نمودند کسی را که خداوند هدایت می کند هم اوست را و کسی را که گمراه می کند پس هم آنها یا زیان کار بیگمان بسا از جن و انس را برای دو زخفری ای ایشان دلهایی دارند که با آن نمی فهمند و چشمانی دارند که با آن نمی بینند و گوشهایی دارند که با آن نمی شنوند، ایشان هم چون چار بلکه از آنها هم گمبراهتره و هم ایشانند غفلت زده. نام های نیکو از آن خداوند است پس او را به این نام ها بخارید و کسانی را که در نامهای او کجروی می کنند به کنار بگذارید به زودی ایشان مطابق به کردار خیش جزا داده می شود از کسانی که آفریده ایم گروه اند که دیگران را به حق راهنمایی و مطابق به آن عدل می وزن. و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند ایشان را از راهی که خود نمی دانند درجه به درجه در عذاب فرو خواهیم برد و به ایشان مهلت می دهیم بگمان تدبیر من متین است آیا فکر نکردن که هم نشینشان گیوانگی ندارد او نیست مگر بیندهنده آشکار؟ ای آیا ایشان به اداره و نظم آسانها و زمین و هر چیزی که خداوند آفریدن نمی بینن؟ و به این نمیاندیشند که شاید اجلشان نزدیک شده باشد پس آیا به سخن بعد از این ایمان می آورند کسی را که خداوند گمراه سازد رهنمایی ندارد و خداوند ایشان دارد در سرکشی ایشان سرگردان می گذارد. از تو درباره قیامت می پرسند که لنگر انداختن آن چی وقت است بگو بگو مان علم آن تنها نزد پروردگار من است هیچ کس بغیر از او نمی تواند وقت آن را آشکار سازد بار آن بر آسمان ها و زمین سنگینی بر شما نمی آید مگر نا از تو سوال می کنند که گویا تو به دریافت آن مشتاقی بگو همان علم آن نزدی خداوند است ولی اکثر مردم نمی دانند بگو من برای سانیدن نفع یا ذره برای خود قادر نیستم مگر آنچرا خدا خواسته است و اگر من غیب می دانستم خیر بشمار به دست می آوردم و هرگز به من زیانی نمی رسی نیستم من مگر دیلده هنده و ده دهنده برای گروهی که ایمان می آورند اوست که شما را از یک شخص آفری و از او همسرش را فری تا به او آرامش یابد پس چون او را در آغوش گرفت یعنی با او هم همدستر شد بار خفیف برداشت پس او به دوره بارداری خود دوام می داد. چون سنگی بار شد و با خدای پروردگار خیش دعا کردند که اگر با ما فرزند شایسته بیدیهی بیگمان از دمره سپاسگذاران می باشید پس چون خداوند با ایشان فرزند صالحی ای یا کرد برای او در آنچه با ایشان داده است شریکانی مقرر داشتند ولی خداوند از آنچه با او شریک می آورند منزه است آیا به او موجوداتی را شریک می آورند که هیچ چیزی را نمی آفرینند و خودشان نیز آفریده شده این شریکان نه با مشرکان کمکی کرده می توانند و نه هم با خود یادی داده می توانند اگر اینها را برای راست بخوانید، از شما پیروی نمی کنند به شما یکسان است که دعوتشان کنید یا خاموش بمانید آنهایی را که جز خدا نیایش می کنید مثل شما بندگانی اند اگر نچنین است پس آنها را بخوانید و باید که دعای شما را اجابت کنند اگر راست می گویید آیا ایشان پاهایی دارند که با آن راه بروند یا دستهایی دارند که با آن محکم بگیرند یا های دارند که با آن ببینن یا گوشهای دارند که با آن بشنوند بگو شریکان خود را بخوانید و سپس در برابر من هر هله را که می توانید به کار برید و مرا مهلت ندهید بگو من کارساز من خداوند است آنکه کتاب را نازل کرد و او صالحان را کارسازی می ولی آنهایی که با ایشان به جز خدا نیایش میکنید نمیتوانند شما را کمک کنند و نه هم با خودشان کمکی کرده میتوانند اگر اینها را برای راست بخانید نمیشنوند ایشان را میبینی که سوی تو مینگرند در حالی که ایشان نمیبینند بخشایشگری را پیشه کن و به کارهای پسندیده امر کن و از مردم نادان روی بگردان. اگر ای از شیطان به تو راه یابد پس به خداوند پناه ببرد، بیگمان او شنوا و داناست. آنانی که پرهیزگارند، چون ای از شیطان ایشان را فرا میگیرد، خدا را یاد میکنند و ناگهان بینا میشند. اما برادرانشان یعنی کسانی را که پرهیزگار نیستند، به گمراهی میکشانند و بعد از آن در گمراه شان هیچ کوتاهی نمیکنند. و اگر تو به ایشان آیه نیاوری میگویند چرا خودت آن را از نزد خود بر برنگوزیدی؟ و من صرف چیزی را تغییر میکنم که با من از جانب پروردگار من وحی می شود. این قرآن روشنایی های اند از جانب پروردگار شما و رهنمایی و رحمتی است برای مؤمنان وقتی که قرآن خوانده می شود، با آن با توجه کامل گوش دهید و خاموش باشید تا باشد که مورد مرحمت واقع شد. روردگار خیش را به تنهایی، بازاری و ترس، با آواز آهسته نبلند در پگاه و بیگاه یاد کن و از غافلان مباشد. بگمان آنهایی که به نزدیک پروردگار تو اند از پرستش او گردنکشی نمی کنند او را به یاد می روماین و به او سجده می کنند